بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمين و الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین ولا الله دائمه علی آدائه اجمعین اللهم افتادا جمعی المشتعی و رحمنا و رحمتکی و رحمنا و حالا بحث و اگه به امورات خودمون بعد در زمین استدراکی از ثابت داشت ما به مناسبتی این که مرحوم شیخ کلینی قدسال لاسره و شریف ادهی از روایات رو درباب نجوم عورده که مرحوم سید متاووس هم رضوان الله تعالی علیه حده از این روایات و از کتاب های دیگه و مسادر دیگه نقل کرده به حدث محمون سرین خاوز در این کتاب فرضی و بودی که علم نجوم پی نفسه مشکل نداره تحریم نداره این که میگن حرمت داره و واقعیت هم داره بله خیلی بشر احاطه پیدا نمی کنه اهل احلاقه منال هنگ و احلاقه منال عرب اون اشاره دارن البته در بعد از روایات اینطوره، در بعض از عبارات اینه که چهار مثلا چهار کلمه، چهار حرف، چهار علم، چهار باب، چهار فصل فرض چهار حقیقت از علمای اهل یکی شه بلدان اون اهل بیت منل اجمن الاراد اج من ال همه شه دارند اینم جایی از شو که من پیروز بیروز در دسته گذشته در صفحه 243 از این کتاب مرحوم بهار آخرش که مهون سیدن در کتاب فرزول مهون، همین حدیث کافی را ناآگاهی یک زعی هم داره. بعدی که از آن می‌شند دل من شون کتاب فرزول مهون پیشانی نبود در اون زنی این داشتنش داره که من خوشش که اینجا من اون به ها بعد نعراف کرده. نوشته از نجوم یعنی سیدن تابوز به اسناد یعنی کلینی مثل وفادتی آخریه اولاد وسیع ادریس علیه السلام. این زادفی آخرهی در عبارت سنهاوز هست اما در زید این روایت نیست بیگه و سنا بعض از افراد که در زیدش اینه ایشون خودش اضافه نکرد نسخه نیست من چون نسبت به نسخه دادن این حفیح بشه که نسخه نیست حدیث شماره بعدی شماره 27 بود که دیروز سهرش و خوندید به حسب ظاهر مشکل نداره سهرش از کردیم تاریخ یک روایت هم واضحه اصل کتاب میراث های ابن محبوب میراث های ابن محبوب خود اصلا محبوب شخصیت بزرگی است حتی در عبارت او رو جزء ارکان اربعه به اصطلاح حساب کردن یه تصوری بود شاوران حالا من کیریه دیگه در شیعه متعارف نیست یه تصوری بود که در هر زمانی چهار نگا هستند که اینا رو چهار رخ نه چهار پای دیوار چهار دیواری ساختمان به اصطلاح اینا ارکان عربعی مثلا شریعت مقدسه یا شیعه و یا مبانی ولایت هستن چون این چهار نفر در زمان امیر ممنی مقدار و امار و عبوزر و سلمان بود بعدها هم همین ترکیم رو سرکن در با... از حسن محبوب رو جزا ارکان عربعیم در روزه این چهار نفر نسبت به امام زمان خودش که حضر موسیقی جعفر و حضر رضا باشه انه ابن محبوب ابن محبوب شخصتت واقعا بزرگواریست لیکن روایات هم داره که خیلی محافظه با قوارد نیست و فتواه هموش یه چاره باید برش بشه به مجرد که بگیم اعراض شده کافی نیست خود من هم, هم هنوز نتونستم یه چاره خیلی واضحی برش بدا کنم البته مرموم نجاشی با جلالت قدرش نامی ایشان رو نبرده این خیلی عجیبه بنا بنای آلمین بگنست مثل ازدیجو آتازیا با خاطر جراثی آمریش. فکر می‌کنم دو کارشون ما افرادی که خیلی امیدجو هستند، ازشون می‌گن از و این نجاشی اسم ازش می‌گوییم؟ این هم هنوز برای ما روشن نیست که چرا امیت مرhum نجاشی با اون جراثی قدرش از این آقا و خطبی مقاره نبوده. دوستم این هم هنوز ما ابراهام دلیق واقعا برای ما نقطه عجیبی می‌طلد که چرا نجاشی ازشون ازم نبود؟ ایشون چون یک جزء علمای کوفه حساب میشه شواهد ما هم هرچیست از این که ایشان به قوم نیامده به قوم یا نیامده ولذا میراس های ایشان در اداد میراس های کوفه ماست ما دو راه بسیار قوب به میراس های ابن محبوب داریم یکی کسانی که از کوفه به قوم آمدن که اداره اصم ابراهیم حاشم اینجا همون نصخ هست نسخ یکی بزرگانی که از قوم به کوفه رفتن و از ایشان تحمول حدیث کردن و اداره اصم احمد ابن محمد ابن عیسای قومی. البته مرحوم احمد اشعری رو بعضی روایات ابن محروب نظر داشته مثلا ابن محروب از ابو حمزه شماری در موقع ایشون نظر داشته که این روشن نیست عمر ابن محروب کفاف نمیکنه که از مثل ابو حمزه رو در کرده بشته یه اون بحثات جایی خودش من فعلا با اون بحث نمیشم پس ما دو خط داریم یک خط کسانی که از کوفه این میراست رو خط خوبش همین خط ابن محاشمه این رواد از خرمشه. یه خط هم از قوم رسن آوردهن. این رواد از اون خط نیست. خط احمد نوحمل الدین صاحب کتوز دیگه هم داریم از قوم اما بهترین خطی که احمد اشعری باشه. ابن ابن محبوب، ابن مالک ابن عفیه ظاهرا سره باشه. خیلی مشکل ناداشته بود. بحثی داره که حالا جاش اینجوریه. ابن سلیمان خالد که از کل این جزو بزرگان زیدی بوده بعد شیعه اثنا عشری شد. و مرد سقه و جریو قدری قال سهل سعبا عبدالله که دیروز توضیحش داده شد این روایت نشون میده که نجوم حقه بله و حتی در زیدش داره حالات تقدیر العزیز العلیم و انا را عبد و امام فرموده نه حالا تقدیر العزیز العلیم و انا عبد و را عبدالعالمی یعنی تصور نکنیم من این هده مثل احاطیبه ای افلاک داریم این مثل ربوبیتی که ذهنت بر هر حال این روایت نیست که اینجا هست مرحوم مجلسی هم سعی کردن جوابی بدن به حسن سند خوبه نمیدونیم چرا که کله مرحوم شیخ کلینی اون رو در کتاب روزه اوگرده این به لحاظت و سند مرحومشان بگه ما فعلا سردن نمیدونیم چون نیم که موقع رد بکنیم واقعا احاطه به واقعیات نداریم به حسن بگونیم که ما الان میفهمیم مخصوان دیگه. اگه این جغرافیا و نجوم و هی اتیکال هم این مطلب قابل قبول نیست کلا. صد این ریشه روایت مبنی سو تطور این که اگر تابستان باشه همه جا تابستان زنستان باشه همه جا از انسانی دوستیت از این ریشه باشه. توجیه معلوم مجلسیم هم باز همینه. توجیه مجلسی هم قابل قبول نیست. از کدوم در روز گذشته؟ از کدوم ما یه نظری از این روایات داریم که خیلی نمیتونی، نمیتونی اونا رد بکنی. من نمی کنم بگیم چیه هست مفاده جدیه و باید شاد از یک زاویه دیگه بررسی شده در یکی دو جا هم در این فصل هم در فصل قبل از این چون فصل قبل از این مروم مجلسی بابو و چند باب و, و اخوال ما داره چند جایشون اشاره میکنه که لعل ما این مطلب رو ذهن سامع گفته سائل, سائل گفته اصلا یه ذهنیت خاصی روزی به نجوم روزی به افلاف وجب الشكر و حمد افلاظ رشته طلب او ما جواب دادم اینه که منشان واضح به هر حال فعلا هر با مرحوم کلهی است حدیث سوی روضه باید باشه تا من بود بغیله الله توضیح واقعی شو arz بفرما از جمله روایات میشن که چون صاحبتهای این روایت نیورده ما روایات کلهی رو که در باب نجوم تکلیل بکنیم حالا دیگه البته arz کردم این روایات به در صاحب فراج المحمون میخورده برای واقع دوگره ایلو به یکی بو برسته کدوم اطلاق که همیشه از نزدیکی نزد... به زمین میشه دیگه بیدین سبیل اینه که سوال کردم هر را بعد مرمو که مثلا خیال میکنه هر را یکیه دیگه فقال بله یا عباریو مریخ کلتران ها وقتی به یک کوکن میشه کل کره نساب میشه دیگه یعنی اگر مثلا یه مریخ گم زهر سرده اگر مریخ نزدیک زمین شود تابستان میشه زهر نزدیک زمین شود زهر چی که فهمم کن دیگه مگر بگیم مثلا مریخ این برا زمینه زهر خیلی هم عجیبه این نزدیک رو بگیرید مضابعا میگی در رواز خیلی عجیبه ظاهرش اینه که این کوکبر رو کره ایده چون اینجور وقتی ملاحظه میشه مثل بحث و قصولی که گره این به هاست قبله قبلی داشتی اینجور وقتی کوکبر رو ملاحظه میشونه کل بزنیده وقتی میگه مکشه اینجوره اراق اینجوره نه، منطقه ایه وقتی میگه مریخ داغه زحل سرگه این دوتا با همدیگه متقابل مریخ به زمین نزدیک میشه زمین میشه کابس ظاهر زمین نزدیک میشه میشه ظاهر کل زمین دیگه میشه مثلا بگیم این ورش با مریخ این ورش با زهره این که خلاف ظاهره دقت میفهم زبان اینی که مرحوم مرحوم صاحبای مرحوم رهرانی میفرماشه ظاهر روایات این است که زمین کروی نیست و یک نواسته هر بالیشان خوب انسابش ابتدای انسان رو این میفرماغه خب. فقط ما قبولش نشه من دیگه کلا اینه که نه این توضیحات عجیبه قری رو بکنی یا همون جوابو خفه چه فرق ذهنیات اون زبان گفته شده حالا امام می‌خواد چه قصص سوالات ما طبق صحبت بکنه حالا اگه جدی نباشه یا مثلا بگیم یه خرابی داره از به سندی مثلا بگیم مالک معطی مشهور نیست احمدی نیست این دیگه است ممکن یعنی ما بحث کنیم چون تو میگی یه چیزی رو شما معطل و قرار نمیکنید یا بعد مثلا بگیم که در حال رد ایمیل ها نمی دونم چطور نمی میرم چون که مشتری درست یک انسان هم از روی زمین و این حوا هستا سرد نمیشه دائما رد میکنیم این باطل بحثه مثلا یه یه دیگه هم اینطوریه یک مریخه که حقیقتی دیگه هم داره چون حقایق مختلفی در اون‌ها قائل بوده. ببینید اینم گفتم درباره موضوعش شما دارید مشکله یعنی با باز بکنیم خیلی در حدیث با مشکل رو میشه بله اگه باز بخواهیم خیلی مشکل حدیث بعدی که باز در کافی هست و باز صوباب روزه هست و باز مرحوم آقای به اسلام شیخ خورمه بردیم روایته روایت شماره 28 از این کتاب بهار. علی ابن ابراهیم انه ابی انه ابن عمر توضیحات من که در سابق ارسو در این کتاب ابن عمر کم دفرم گفتن مشروع و معروف انه حشام ابن سالم انه ابی تو بعضی از نوشتگاه‌های ما آمده، هشام می‌بند سالم، آن آبی ایوب، آبی واسیل، خیلی فرق نمی‌کنه همه سرهم. شاید آن آبی ایوب و آبی واسیل بوده، اردو مهم است. آن آبی عبدالله علیه السلام یه حدیث مفصلی است که آذر ابا ابراهیم معروف در رواط ما، اموی ابراهیم بوده، آذر مثل پدر ابراهیم نبوده. کان منجمان لندمرو، یه چهره‌ی گریه‌ای، دی مواظبم تکرار بکنم که این زیادی نیست، یکی منجم مدعی گفته. در این شب این نقطه ای بسته میشه و اگر این شد مثلا این کافه بود رو از ذهن میبره بعد اونم قوامل فرست بعدم در این مفسر قابله ها نگاه کردن با اینکه که مادر ابراهیم دیشون حامله بود مثلا این تعبیرش اینه تعبیر اینجا رو با هم اینه هست فنور نفع از الله عزوجل ما فر رحم از زهره اینجوری بکنیم رحمش رو خداهای متعال بود. چون رحم آوی چشمی این رحمش رفت رح به پشت چشمی در زدن هیچ نگردند فر انزل رحم ما رحم موجود موجود چشوند به اسخونه عمود فقرات حالا این اصلا اعجاز الهی بوده بله تعل الزمل را یعنی یعنی این رحم رفت عقب به حدی که در حکم به اصطلاح عمود فر تو رحم چیزی ندیدند فقول ما نرای بثنا ها شه مورد از ض نجرهه کنایت بث مراس اینه. و کان فیما اوتی منال ایل خیلی عجیبه در جناب و آذر یاد گرفته بود یعنی آذر میدونست اوتی منالعلم این مراد از این همون نجوم همون حساب محاسبات ان نود سیییه قیاستسه و هر نه. این هم دیده بود در حال این بچه که این بچه مالی که نمروز رو از ذ می و در آتش هم افتاده میشه. اینجاش هم دیده بود. تو محاسبات نجومی ان سایه هر رقا ف النار و لم علم ان الله تبارک و تعالی خینه جهنم ها. اما اون نجات از آتش دیگه ندیده بود. تا اینو شریم حد بود. تو آتش رفتن دیگه دیده بود. خل نار کنی و بعداً سلام علیه این دیگه ندیده بود. این حدیثی که سندش الان درسته البته مرحوم سید تابوست این حدیث رو ابرده خب دیگه واضح دیگه نیمه من براتون عرض رو روی این نقطه که مثلا درست بوده این علم نجوب درسته این حدیث حالا مرد زمان نمرود و پدر ابراهیم و عموی ابراهیم و حالا این تمثب کرده این حدیث برای زمان ما و بعد شریعت مقدسه نمیشون میشه در این شماره 28 بود این برای سعه ای اطلاعات مرحوم سلیم ساوز عرض میک ون هموزلا در شماره نو در این کتاب صفحه 237 من یه مظاد می خوونم به باال جارات دللتتیش یه مظ با حدیث و میراتساایشی آشنا بین چون و مجلسی از کردم چندبار از کرد در یک باب باهده اولیا اووابی باق باق کهم مییدطیانی بعد ه ه ن وقت داره وارد داره. مقایسهات چه مثلا 5 داره یک شماره بی چه 5 خیلی متفر از این هم حدیث شناسی و مرحوم به کار نبرده الان همین راهیلی که مرحوم آی بروجیل در زیر خودوی حدیم برای این راه خوبیه ایشون برداشن هر احادیثش رو پشت سر هم آوردن برای استیاب خیلی خوبه اما در بهار این نیست مثلا اون شماره 28 که از کافی بود در شماره 19 از کتاب فرجل محموم مرحوم سیدن تابوس، بله و اما مادلال مجموعومعلاق ابراهیم فقط دارم با صاحب و کتاب تجمل هم این کتاب تجم همطوری که در این فرز آمده ما هم نشاسید این سافه در شیخ توصی دو تا از این کتاب نام برده شده در این نسه استفلرنگر که من دارم در هر دو تحمل آمده از تحمل مروعه اما منازه اسمدار میخوام تجمل یا تحمله و احتمال داره که کتابم یک فصلی بوده که که اون مثل میمره. چه کلنی که از کتابای کاوی کتابو تجمع تجمله حالا نمیتونیم ایشو یکی دو جا چند جا از 7 8 10 شد زیر 10 از کتاب تجمل در تو به شام برده اولا احتمالاً دو تا باشن یکی نباشه و شاید بیشتر بیشترام باشه و فعلا نمیتونید تشخیص این انصافا مشكله برای من هم مشکل شده انعا در ابا ابراهیم کان منج من لدم رو این تجمبل الان در چی این همون حدیث مرغوم کلی که اوورده بله اینجا هم خیلی عجیبه این مرد ملاحظه شده فعل زم مافر رحم از زهر اونی که در رحمش بود خداوند چسبون به کمر به استخانه به اون عمود فقرات دیده نشد و قول نما نرافی بخناه هست. و این این کتابت جمال همین کتاب کلینی خیلی شبیه کلینی اینجا و کانه معاوتی این کانه آزر که در ابراهیم یا اموی ابراهیم معاوتی از ال انبال مولوس سیهرقاب نام و همی وقت ال من انبلا سیانجیه من آخه عجیب این زیل هم در اون کتاب آمده حالا من این قسمت رو نمیخوام مترس بشم که کشیدیت بعد یه ورقی تو هاور حدیث ابولو تو... این ابولو مال صاحب بهار نیست من صاحب سلفاموس فاموس و رموی در حدیث ان ابراهیم الخضاز ان عبی بسیر ان عبی عبدالله عليه السلام خیلی عجیبه حالا من اصل قره علا حارون ابن موسا از تل این زدش تل اکبر اکبرا شهری بوده روستای بوده روی دجله اصاف دجله نزدیکش به نام اکبر هست که مقروم شیخ مفیدم از همین اکبریستی از اکبر است. این حالون موسا از علمای بزرگ بغداده بسیار بزرگ باره این حالون موسا واقعا گفت فقر و شیعه زمانه میشه ایشون تمنیمان به تعمیر شیخ سلسی روا جمعی اصول از ها مصنفاته یکی از قصانی که خیلی احاطه به اصول و مصنفات داشته همین تله اکبریست خیلی از خطور معروف ما ایشان اسم ایشان اولشن حدیث نهارون موسا هم کلا من این میاده که ما هم برسون بگم که این با تاریخ آشنا روشین این کارا هم نشده ایشون میگه ای ای اصلی بوده که هم هارون موسای تل اکبرید درست شد تا اینجا حالا ما با قریده کتاب مرهوم کلیدی چی میفهمیم مرادش از این اصل ایشون تشریف نداده این کتاب ابن حوی از کتاب نبی اونهای بوده به نسخه تله اکبری ایشون بگه اصل قرعه من اصل قرعه علا حارون موسا طلع اکبری این چرا اینقدر واقعا این ظرافت های شناست مسادر شیعه خیلی مهمه از از خارجی اون اینقدر آم طرف کردن در اینجا این ظرافت این ها ببین کافی چی میگه حدیثی که این بود اول خونده علی ابن ابراهیم انا عبیه، انا ابن عبی عمر. این ابن عبیو عمر از کتاب ما ابن عبیو امیر، انا سالم، انا ابی این ابی و خزاز همین ابراهیم خزازه. معلوم است اولویه و رابیشها حاضر حدیث انا ابراهیم خزاز، انا ادی بستی نبی خیلی امکان نشده که دیوکلی نیه. و쨌ه نه، وای. اینه که دوران خضاز همون ابی ایوبه. لذا من عرض کردم احتمالاً واو باشه. این در کتاب ابن عیمر هر دو بوده. ان هشام اینا در یه ابن عیمر ذکر شده که ان نمیشه میشه هشام ابن ابراهیم ابو ایوب خضاز ان محمد ابن ان ابی بسیل. این مؤیذه که واو بوده. رویتوا در حدیث میگم به ذهن خیلی ها میکنه اتوام فطور نکنه که اینو به اون رفت سودن. این حدیث این کلام سیدن تاووسی در کتاب به ها صفحه دیری سو و هش آمده این رو با عبارت کافی که در صفحه دیری سو چله هش آمده رفتش بدین. این خیلی زرافت داده سر تقارب این دو نسخم همین شد مرحوم سیدن تاووس نسخهی که مال بغداد بوده و قرآن شده بوده برای هارونه به موسای تل اکبری نتونسته بشنید این نسخه چیه؟ من اصل قرآن اسم نبوده این کتاب کتاب نبی اومده این که میگه روی تا ان ابراهیم الخزاز این اول سند ابراهیم الخضاز یا ابو عب... ایوب ایو، ایو بوده ابو ایو، ایوب در اسم اختلاف از ابراهیم گفته ابو ایوب بودشه لذا ای که چی میگه سمت ها نسخه به بده. گفته در یک اصلی که بر حارم و ساد شده اول اون سن اینجو بوده ابو عیوب الخضا از انعبی و بوده اون نسخه به نحر که به دست ما رسیده توسط ابراهیم هاشم از ارام به قوم آمده توسط ابراهیم حاشم از ارام به قوم آمده فکر ما دیگه کاملا روشن شده این دوتا رو به هم دیگه رفت داده خیلی ذریفه بعد میگه وقدره باها بر حدیث علی ابن ابراهیم کتاب تفسیر قرآن به هفت سطح نهاده یعنی همون قیده من شد علی ابن ابراهیم همین نصفی علی ابن هم میشونی کلینی بوده انبتی این حدیث در کتاب کلینی هم ذیب داره ایشون دیگه کلینی چه خیلی پت... متوجه نشده اون بود. این... اینن به همون ذیب داره پس این این ارجاعش به داره زرواح و ایزان ابو جعفر محمد بن جریر خبری جزء اول من تاریخه. اما الان من نشد تاریخ مراکیان تاریخ طبری کیشون از کی نقل میکنه عادتن ایشون نقلی که بکنه از هم منابع اهل و رواه و ایزان اینا ببینید چهجوری اینا که رواه و سه مکای کاریشان چیه میخواد بگه این کار درست بوده که از تحت مختلفه اینو حقه میخواد دنبال این مطلب و خلاص این مطلب <تصفيق> می توانستن با علم نجوم تشی شدن انشب نع براهین بسته میشه این شخص بعضها ها بلند, بلند میشه و بود از به میبره و همین شخص در مقابل نور نیست از روی نب اون هم حشه در مقابل نیست و همین شخص تو آتش می و سوخته میشه اعته. تمام اینها را آذر از راه نجوم خبر داده بود، این اصرار ایشان درره و رواه و، ایوغان سعید بن الله راوندی همین مرو مغتصازی که قبل شریفشون تو حرم هست. بسیار معروفه سعید بن هبت الله راوندی فی کتاب قصص الانبیاش ایشون هم برگشتش به همین کتاب النبیوم. این تا اینجا اون تبری دیدم سویاس من الان نگاه کردم. ورواح و ثعلبی فی تفسیره و غیره و غیره من العلماء ثعلبیشون زهر سنته احتمال داره از تبری گرفته باشه چون نگاه نکردم البته یک تعلیبی در یک سوالی می داریم میشه با هم دیگه اون چاپ شده و نه اون بعدا سوالی چاپ بشه نه چاپ تا سوال بیاد تفسیر سواله بعد ایشان این روشن شد این حدیث در حقیقت یک اصل واحد داشت که کتاب ابن عدی عمر بود و توضیحاتی که خدمت داده دادش این مطلب رو که مرحوم سید طاووس میخوان ارسال را اجماعا با قبول بکنه البته این هست گایی اوقات در مسائل نجومی اون حوادث مهم تاریخی نشت میشه روشن میشه از یک روایت ما معلوم میشه که یک حوادث غیر مهم هم نشت میشه یعنی مثلا فرض اون توی پیاده رو ما چهار تا سردی در میاید چهار چند دوره هست چپیش چیه راستیش چیه هیچ چیه اونه که تمام این تا این ملدار جزی یاد حالا هسته این که از شونه که یکی از نقاط عطف تاریخی ممکن در درزی اصلاحیون بیاد اما یک حادثه بسیار بچی مثلا تو این باغچه هشت و علف در میاد این 8 و چیه اولی دوره تمام خصوصونه هست و اینا تمام تو علم نجوم تو از نجوم اصلا این حد که کسی علم نجوم بگیره تا اجمامش کنه غلط بده نه ابراهیم و آتش بالاتر از این که غلط دانه, دانه ها و الف ها و یک یعنی نیزاری تو پر از نیه و پر از از این رو میتونه خرار میده که شنگتا نی توی این وجود داره حدیث دیگری که داریم حدیثی اد... باز کلینی شمایی 29 ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد توضیح سهل دادیم ان الحسل ابن, ابن عثمان در عدی از روحات ما عثمان آمده در مسادر رجالی و فهرستی ما عبید عثمان آمده این کانو ملتب به سجاده و زعیف حساب شده قابل اعتماد نیست این عبی عبدالله مدرانی که خیلی واضح نیست اینجا کیه این عبی عبدالله علیه السلام انالله عزیز و جل خلق نجم فلفل که سابه که ظاهرا مراد زحل باشه فرخلقه هون من ما انبارد و صاحب النجوم سته جاریان من ما انحار و هو نجم الانبیاء والاوسیاء و هو نجم الامیر المؤمنین زوحل نجم امیر و امین بالخروج به من از دنیا و زخ ها این روایت در زیدش اضافه بر اینکه نجوم و ارتباط نجوم هست اصلا اضافه او ارتباط با امامت و ولایتش رو هم اثبات میکنه بلکه از این روایت مبارکی یک معنای دیگر یه در میاد به اینکه که اصولا حتی اعتبارات قانونی رو از نجوم میشه من یه وقتی کردم یک تفکری هست الان در غرب هست در شر همجاست یه از قدیم بوده این اصلا اعتبارات قوانی اعتبار نیست قانون اعتبار نیست ببین این قانون قانون یک خاصتی برای شی مثل بقیه حوادث مثل اعراض مثلا این دیوار صافه این دیوار سفیده یکی از قواعی که یکی از چیزایی که دیوار اعراض داره که میشه مشکی داد این میشه تکیداد یا واجب داد یا حرام تکیداد اینم جزء احراز خود دیواره خودت یاد بکنیم. این یک امر حقیقیه. این رو جلید اعتباری و لذا اینا فکر میکنه که بهترین قوانین این است که ما بکرانیم اون طبیعت رو اول بشناسیم. اون حقیقت رو بشناسیم. اون رنگی که داره خود حقیقت رو او رو تنمیز دیدیم. مثلا این خیابات این کوچه اختزام میکنه ماشین مثلا باری توش نیاد. این اعتباری نیست. این اعتباری نیست و این, این, این باری جنوز این خیابان، این خصوصیت، این مقدار عرض خیابان، این مقدار رفت آمد مردم این احتضام میکنه که مثلا دوچرتی اینجا رفت آمد بکنه این بیانید، بیانید ما بیاییم به جایی که دنبال اعتبار بیوکتیم بیاییم اون واقع رو در بیاریم که اعتبار یک جوی جوز اعراض اون واقع باشه از این روایت معلوم میشه که نه حتی اخلاق و اعتبار این حتی با نجوم هم ارتباط داره این بحث تکییدی و واقعی <تصفيق> نه که با خودشه فرض مثلا شما میگید من با مثال میخوام بگم شما میگید مثلا کتاب خوندن یک عمل فینسته اینقدر خوب که طبیعتاً اختصار میکنه که انسان واظار بکنه به کتاب خوندن و فرض کنید مثلا قماربازی اینقدر بعد که خودش اختصار میکنه انسان انجام نده اما چیزی روایت میگه نه در نید در نید حد در نید از این در حدان نیست بالاخره این ستارهگانی این دارن اصلا خود وجود یامر <متضی langhora> <بزهر> بالخروج. بالخروج من از و زهد خود ستاره دوهر در فلک صابر تدریج جان این سفاره ی امر به خروج بالخروج من الدنیا و زهد فیها و یامر به استراق تراب انسان مثلا رو خاک زندگی کنه وقت تراب و توسط لبن به اطلاح آجوره. لب و و لبن لبنه به اصلاح آجره لبلبنه مثلا لبن آجره لبن جمعونه یعنی ترسدن یعنی به صادر قرار دادن متکا یعنی صبح متکاش از آجر قرار بده و لباط الخشب الاخری این روایت آمده من یه نکته رو در سابق امروزم هر کردم بعضی از مطالب در روایات دیگه ما هم آمده در این محدوده هست من سابقا یک مجموعه روایت رو خوندم که مثلا به اینکه زو غلب چه نظری این مطلب رو یادم خب آن بود مراجعه کنم من با این که این هم با قایسه بازم از بس محوم کنیم مشبه و از دست ما هم گرمسته این مطلب رو ببینیم در شماره دو در در شماره یک علی احتجاج اینجا از علی احتجاج نقل کرده امان ابن تغلب قاله کن تا این به عبدالله علیه السلام هردخ اله علیه هر رجل من اهل یمن از خلق این رباید که زهره نمر و زهره هم ز... امام ساده نمر هم از امام رضا این هم باز از امام ساده فرد در باید ویلا فقال مرحبا یاسد اون هم نگه اون که نسخ برزی هم سعیل نمشه این میاکسی این اسمه نه خبر نداشت یعنی یه خیلگوی امام سامن باید بعد فرموید که بله ایلا سو... حالا من دیگه نمیخاباردون بعد قال, جوهل، قال جوهل تو فذا ب... که من اهل ده من ظوق به لا لای قال ان نهبلعمل أحدا اعلم به ننجوب مندان. بعد همون سوالی که سابقن خوندن گفت می یادن اون جم حال مراضه کم زوق مشتل على ظهر قر در از جه قال لا اذبی کمصد ظوق مشتل ضات رو در قالدم از هم اون که سابقن گد کهگر بعدشون بهیه تو این سوالات اما ما نجممل الذي ادار حاجت بقر مثلا گاب ها اطلا میکنن یا میدونن اون ستاره که در میافتی گاب چ گلایم به این چقدر ارتباط بین قول یک یک روشنان فلکی و اصلی درمانیظ و در ریین میخوان بخونم روشنان فلکی و اصلی درمانیز در وشه که نه اینقدر اثر داره که اگر اون نجیب درآد مثلا شزارره به حرکت می گاب ها حرکت میان فقال الیمانی لا عبدالله. حضرت هم صده از بله شما بلد نیستی کار شما نیست بعد ایشون میگه بله لاعبی بعد بگه لا فما زهل اندکان فرنجون همون نجم هفتون تلکه هفتون زحل چیه فقال الیمانی نجم نحسون. ببینید فقال ابو عبدالله لا تقول حالا این نه فه انهو نجم امیر المؤمنین. و هو نجم الاوسیا و همان نجم صادق الذي قال الله فی کتابه وقتی ظاهر نجم صادق همین ستاره‌ی دنباله‌دار ظاهر آیه که دنباله‌دار است یه تصویر عجیب برای نجم صادق و جنتی مخالفون بحثش میشد ارم خودشون بله و بعد امام مکاری دیگه این مطلب رو در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی آورده ذکر نمون طبرسی در اول احتجاج نوشته هست در این کتاب مولانا مجان علیه ها. خیلی عجیبه کتاب احتجاج رو ادعای اجماع کرده و مرحوم سال وسائل هم عبارتش در جلد آخر وسائل جلد 20 به و برده بر این چاپ مرحوم اربابانی آورده برای اینکه بگه این ثوابی که درش اعتماد شده اعتماد بوده نه اعتبار بوده این حدیث رو ایشون در اینجا پس این حدیث مضمون این حدیث تیکی تیکه شده یه تیکه اشتراکی به زهره با یک اختلاف تعبیر هم در کافی آمده از این شخص ضعیف هم در کتاب از ابانه تقلب نقل کرده مرسلم این در صفحه 219 شماره 1 اگر در خدمتون باشه 50 صفحه بعد 269 یعنی خیلی به هم ریست و بزار احمدتان برامه ایدست کاش که باید سرم اولید خوبه اجیماعی که نه بله حالا که کسایی که پرستیم مثلا مرومه شخ عباس و ابوسقومی در این کتاب مفاتیح و بسند معتبر از امام صادق (ع) معتبره. سوال يا به تهذيب و استرشاد يا کامروزانه همون سند ضعيفه. بارشون اصلا صاحب اعتبار کتاب چیه؟ من قم بسیار مرد بزرگوار بسیار خوب، باشه مبانی رجالیشین در کتب اربعه باشه یا کتاب مشهور به قبول. میشه معتبر. این اجماع هم به معنی حالا این روایت رو الان خوندم براتون در احتجاج بود، در کتاب کافی یکی کش بود. با یک اختلافی این در شماره 56ی حالا مجرم نازال بخون روایت رو دردن که همه شناسی کار بکنی برسن این رو در کتاب در شماره 56 در سفر 269 یعنی بیدیم اون یکی رو دیویس تا ش... نونزه اردو بعد این یکی رو اردوه اینه که ذهن منم مشبه کرده و همینه. این با تأذبال با آخر با تما رو داد نیگاه کنید و تا این رو باید با اونه. ان محمد ابن موسیم نمترکل توصیب نشده اما خبی توصیباتی برای تیدا کردن اجمالاً برد میتونید که در جدوی بدیشون اما علیه بن حسین سعدابادی از مشاریخ قوم استاد کلینی استاد معنی معلم عدد ایشان و یکی از راویان مرموم برقی پسر احمد برقی یکیش ایشانه این از اصحابانه که کلینی یکی یکیش همین سعدابادیه من یک نقطه را ارز کردم با سکرارا میتونم سعدابادی به عنوان خوسیق نداره در کلماته ارسان با اینکه معذب کلیگی یا معذب ابو و زراری و معذب هم ارز کردم ما الان معذب رو یعنی دو ادب آموه بیشتر ادب فعل به ذهن ما میاد که اخلاق میدیم در قدیم ادب الفعل و اخلاق گفتن. یک ادب القول بود یک ادب الفعل ادب الفعل رو اخلاق میگفتن ادب علوم معدل میگفتن که ما الان در زبان فارسی ادبیات می‌گیم ادبیات و نحو و صرف و لغت و وزارت ادبیات اونا وقت ادب میگفتن کان معذب کلینی مرادی که نحو و طرقه بکنه یاد داره مؤدب فنا نه دو وا غلط برداشت نشه این اصطلاح مؤدب اصطلاح تر و نحو و ادبیاته این بطور حالا من نمیذارم چرا روایت هم بد نداره اما هر چی روایت از این بزرگان در کوسه ما هست بدون استثنا فقط از برقیه اینم خیلی درجیبه شادیز الحثاری که احمد برقیه از هیچ یک از همیان حرف نمیزنه و برقی هم یک مشکل داره دیدی توی کتابی و ناقصه این شعر داره ظاهرا برقی هم حالات باشه مثل که مثلا میگه مرحوم ناینی حالات اولش اینجوری بود تقاضا برقی جوری بود مثل اینکه برقی هم اینجوری بوده احتمال داره و لذا خوب به خاطر اینکه گاهی بیش از گاهی سعدآبادی انحراف داره چون الانا می‌بینی کسی که خیلی دیگه شاگرد محض یک نفر بشه گاهی مسائل ازش این کسی دیگه حالا میشه اون را قبول کرد یا نه اون بحث دیگری علی ابن حسین سعلابادی منحترن از برقی نرمی کن پسر برقی بزر احمد این عبی این محمد ابن سلیمان صنعانی این یمنیه نمیشون سینش این ابراهیم ابن فضل این از خاندان بنی هاشم در مدینه بوده اگر اون باشه ابراهیم فضل حاشمی اگر باشه برمیگرده به اولاد عبد المرتلس. من ابان ابن تغلب سند گیر داره یکی دادش که روی در داخل علی از من این الان در کتاب سال مرحوم صدوق آمده پس اینا روشن شد اینی که مرحوم احتجاج میگن اجماعیه مصدر کتاب احتجاج کتاب سال صدوقه برای سوال کرد در چه موضوعی بود از ویش اعتبار آتشی روشن شد درتون ایشون از خسال مرموم صدوق نهارو کرده <تصفيق> بله این حدیث رو زیجه نهارو کرده نداره، پس مستر نذاره بس که حدیث و مرموم همزر نهار که مسترش آل از سید رحمه الله حالا سید چون خیلی به در روی سید و نجمول و فلان و آثار داره گام مثلا به حیجام میاد چطور به حیجام میاد یعنی روشنان فلکی اینقدر تأثیر داره که به و شطر و گوشتن به همه که تأثیر داره خیلی خوشحال شد تا امتابوس که بله که اینا رو نمی خبر دارن بعد ایشون سه امتابوس رو وجد کتاب عتیق تعلیف علی بن عبدالعزیز نیسابوری ان علی بن احمد ان ابراهیم فرز ان ابان ابن این در این کتاب هم من دیدم. این هم از مشکلات کار شخص بی این اسم علی ابن عبدالعزینهی ای سابوری رو ما فعلا نمی‌شناسیم. این کتاب ایشان هم مالکیه اونم نمیشنسیم الان نمیشنیم با متاسفانه چیزی راجع به این کتاب بگیم که این از کجا هست سید چه دیده به نظر یا سید شاوسوی خوش اعتقادی که داشته به نحوی مجاده اسم یک علی ابن عبدالعزینهی ای سابوری اما علی بن احمد احتمال داره من یقین که ندارم چون این طبقه شکیل نیست کی از, از اون علی بن عبدالحمید ابن علی چون ما یک علی بن احمد نه اشیام داریم احتمال داره اون باشه وقتی با این, این شخصو کلا نمی‌شناسیم و ارزش اطلاع نداریم در کامروزیا کتابخونی توصیلش شده که بازگردان غیر از این جهت این علی بن احمد ابن اشیام اشیام در لوات عرب مرو که خال باشه شامل خالص اگر زن باشه شیما میگه اگر نه باشه اشیا میگه علیه نه احمده نه دیگه ما نیمشونسیم اطلاعی از احوال ایشان نداریم ابراهیم مثل و ابان ابن تغلب مثل همه پس این مصدر جوبون برای حدیث که باز از راه مثال و باز هم ما اونو نمیشونسیم بعد فرمود که حالت سید و روی تو و روی تو حالت حدیث به اطانید الا ابان من کتاب عبد الله بن قاسم حزرمی کتاب عبد الله بن قاسم هست اما حالا چطور میشه بگه بسانی ان ابان از طریق عبد الله بن قاسم حزرمی البته عبد الله بن قاسم رو به از رجالی ها تو حساب گذاشتن که مثلا باشه تضعیف کردن کشه گفتنش شاید به نظر ما یکی به همون بطل و ضعیفه خوزی های شرابان هست خیلی چود دار راجب افضل و مقاصد شده خیلی اختیاری حصاله به زیادی قابل گفتنه و دینش و دیرگاه ها راجب رجال و حدیث عرض میکنه جزاگانه با صحبت و صلی اللہ علی محمد و آله